همونطور که میدونید هفته پیش چهار تا آگهی توی نیازمندی‌های های همشهی زدیم برای دعوت و همکاری که بعضی از مصاحبه رو گوش کردیم خیلی از کسایی که تماس گرفتن به من اجازه ند که مصاحبشون ضبط بشه برای پخش روی پادکست یه آگهی بلند بالا نوشتم برای مدیر برنامه پادکست که فکر نمی کنم هیچ روزنامه اینو چاپ بکنه اگر چاپ کنه هزینهنش خیلی زیاد میشه بنابراین. تصمیم گرفتم این آگهی ای رو همینجا توی پادکست بخونم کسایی که میخوان همکاری بکنن میتونن اینو به عنوان یک توضیح یا توصیف شغلی استفاده بکنن دعوت به همکاری از مدیر برنامه برای پادکست گپ با علی سخاوتی برای من این یک شغل واقعی شاید برای شما هم روز یک شغل واقعی بشود شما میتوانید این شغل را بسازید و شاید هم در این میان این شغل شما را بسازد. داشتن هیچ مدرک یا تحصیلات خاصی برای این شغل ضروری نیست. اگر شما در حال گوش کردن به این پادکست هستید، معنیش این است که ظرفیت بالقوه مدیریت پادکست گپ با علیه سخاوتی را دارید. شما ظرفیت بالقوه انجام هر کاری را دارید. برای بلفل شدن ظرفیتهایتان کافی است، ذهنتان را به امکانها باز کنید و دهانتان را به چیزهایی که نمیدانید ببندید. نمیدانید کافیست همیشهها و هرگزهایتان را محدود کنید تنها شرط ورود به این شغل آدم بودن شماست که میتواند با پر کردن یک فرم کپچا آزمایش شود یا با عدم علاقه مادرزاد شما به انجام کارهایی که یک کامپیوتر میتواند انجام دهد اگر عشق علاقه اشتیاق و آرزوی خود را برای انجام کارهای اداری مانند کار با افزار اتوماسیون اداری یا هر اوتوماسیون دیگر در ده سال گذشته از دست نداده اید، شاید معنیش این باشد که این شغل خاص برای شما در حال حاضر مناسب نیست. سابقه استفاده از دستها برای انجام هر کاری بجز کلیک کردن یا لمس صفحات لمسی قطعا مزیت محسوب خواهد شد. البته نیازی به ارسال هیچ گونه سابقه کاری یا پر کردن هیچ فرمی وجود ندارد. تنها در صورت نیاز به ارسال سابقه کار، آن هم نه برای این شغل دارید که عنوان اولین شغل شما پس از فارغ و مدیر و عنوان آخرین شغل شما مشاور بوده باشد. مدیریت برنامه پادکست گپ با علیه سخاوتی را در هر زمانی و از هر مکانی می توانید انجام بدهید. شما آزادید که برای این منظور البته با هزینه خودتان شرکت ثبت کنید، دفتر کار تجهیز کنید یا منشی و کارمند استخدام کنید. یا حتی کارت ویزیت چاپ کنید یا حتی پیامک تبلیغاتی بفرستید. شما آزادید که در چارچوب قوانین هر ایده را که برای مدیریت پادکست گف و علی سخاوتی دارید هرچند احمقانه یا پیش پا افتاده به نظر برسد عملی کنید. معیار ارزشگذاری ایده های شما علاوه بر درآمدی که ایجاد می کنند، میزان یادگیری شما از فرایند اجرای آنهاست. معیار سنجش این یادگیری هم طبیعتا، ایده های بعدیتان و فرایند عملی کردن آنها خواهد بود. باید بدانید که به عنوان مدیر برنامه پادکست گپ با علی سخاوتی ایده های شما تا زمانی که توسط خودتان عملی نشوند تشیزی نمیارزند و حتی ممکن است توسط من یا دیگران دزدیده شوند. تنها محدودیت شما این است که تحت هیچ شرایطی اجازه دریافت پول از شنوندگان این پادکست بابت دانلود آن را نخواهید داشت. بابت دانلود آن نخواهید داشت تنها دلیل این محدودیت این است که موضوع یکی از برنامههای پادکست ممکن است فواید دانلود غیرمجاز و رعایت نکردن قانون کپیرایت باشد این شغل حقوق ثابت ندارد ولی قسمت قابل ای از درآمد حاصل از کارهایی که میکنید یا نمیکنید به شما تعلق خواهد یافت ما با هم قرارداد کتبی امضا کنیم و نیازی به دادن سفته از سوی شما وجود ندارد ولی باید تعهد بدهید که در حین مدیریت این پادکست با پدر و مادرتان مهربان باشید. تا اینجا همه چیزهایی که لازم است درباره این شغل بدانید گفته شده است. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفاً به اینترنت یا مشاغل دیگر مراجعه کنید. رقیه شریفی الو؟ الو. بفهمید؟ به واسه قبلا تاگهی که داده بودین تماس گرفتم. کدوم آگهی؟ کارآموز روانشناسی. شما روانشناسین؟ من روانشناسی خوندم بله. بله. فقط قبل از اینکه مصاحبه کنیم این مصاحبه قرار زبط بشه نظر شما اشکال نداره؟ مصاحبه زبط بشه؟ بله. نه اشکالی نداره. بسیار خوب شما کی فارقو تحصیل شدید؟ من سال و هشت, هشت. سال هشت و هشت از اون موقع طاله چ کار کردیم؟ توی مرکز مخشی کار میکردم یه مدتی بله چیکار کار می اونجا مسئول فنی بودم و روانشناس بودم اونجا مسئول فنی چ کار میکنه مسئول فنی اونجا چه کار میکنه؟ ل بله. د اداری شو تا حدی نظارت میکنه بعد کار آموزشی و طبان که اونجا انجام میشه نظارت میکنه ساماندهی میکنه در واقع کار شناسی هم گفتین میکردین؟ بله بعد چرا الان میخواین کار آموزی کنین میگم من چون با کیسای توان ذهنی فقط کار کردم درسته با کیسای دیگه اصلا کار نکردم مایلم مثلا توی زمین دیگه کیسای دیگه هم کار بکنم بله بله با کار ما اشنایی دارین؟ نه خیر نمیدونم در چه زمینه ای هست ببینید این یه برنامه ای با... پادکست میدونین چیه؟ نه پاتکست که برنامه مثل برنامه رادیو میمونه ولی رو اینترنت منتشر میشه بله بعد آدم های مختلف تماس میگیرن داجه موضوعات مختلف ما حرف میزنیم و بعد این منتشر میشه رو اینترنت، هرکی به خاط میتونه فایلش رو دانلود کنه و گوش بده این از نظر شما چه ارزش عرضش ای میتونه داشته باشه؟ چه ارزش روانشناسی یعنی از بعد روانشناسی فکر میکنید چه فایده ای میتونه داشته باشه برای آدمو برای آدم, ها؟ آدم ها چه فایده ای میتونه داشته باشه من خیلی متوجه این که میگید نشدم که حالا بخونم ارزشش چیه میشه بیشتر توضیح بدید ببینید فرض بکنید مثل مثل برنامه رادیویی که مردم تماس میگیرن بله موت های این شکلش اینه که من بیشتر از کسی که تماس می گیرن سوال می کنم و اونا بیشتر حرف میزنن تو چه زمینه های مختلف زمینه های که بیشتر کسی که تماس گرفته درش یه تجربه شخصی داره اه. یعنی حرفها بیشتر از تجربه،, تجربه های شخصی تا تئوری هم تجربهشون رو میگن بعد این منتشر میشه بله بله این،, این یه فایل صوتی میشه که هفتهگی رو اینترنت منتشر میشه و هرکی به خواهد میتونه دانلود کنه و اینو گوش بده چه ارزشی میتونه داشته باشه بله از این ازایی از از از از تجربه ای که هرکس به دست میاره اگه به این طریق منتشر بشه میتونه برای بر دیگران هم قابل استفاده باشه تجربهشون. نمی دونم دقیقاً. آره ولی از از از دید روانشناس به نظر شما یه همچین کاری چه فایده می‌تونه چه کمکی می‌تونه به آدما بکنه؟ از دید یک روانشناس نمی‌دونم. شما فکر می‌کنین چه کمکی می‌تونیم به هم بکنین توی تولید این برنامه؟ شما میام همون کاری که شما می‌فرمایید مثلا چه انتظاری دارید بر کسی که حالا قراره به شما کمک بکنه ببینید من این آگهی رو که چاپ کردم اه. و حالا الان یه هفته ازش گذشته باز گذاشتم یعنی دوست دارم که کسایی که زنگ میزنن اونا بگن چه کار میتونم برای من بکنم من،, من شغل رو فیکس نکردم که بگم من یه همچین کاری میخوام از شما خودتونم دقیقا انتظار مشخصی نداری. ببین من انتظار مشخصی شاید داشته باشم ولی میخوام اینو برای خودم نگه دارم و تحمیلش نکنم به کسی که میخواد با من همکار بشه و میخوام باز باشم به ایده های جدید و کارهای جدیدی که اونا میارن مم. نمیدونم مره راحتش مفیق بکنم خیلی نتونم با شما همکاری بکنم چون زمین هستم برای من مشخص نیست. مشخص بسیار خوب خیلی ممنون که تماس کرد خواهش بکنم ممنون مفیقی محفر باشی این خودتش خودتش الو دفعه این ایو باشیت راحت تر. سفارش میکنم بفهمی. اسمم ثبت نشد. الو؟ الو الو. بفهمی؟ میگم تکونم اسمم ثبت نشد. اسمتونو بفهمی؟ محمد. محمد آقا از کجا تماس میگیری؟ من از ابهر. از ابهر به چه منظوری تماس گرفتید؟ اول میخواستم ببینم موزه برنامه چیه هست. موضوع برنامه تو نداری؟ من نه. هیچ موضوعی نداری؟ موضوع خاص کنه ولی اگه شما بگید حتما راجبه اون چیزی که شما میگید بهتونم یه بگم خب من یه بزار دو سه تا موضوع هست حالا با یه دونه شروع کنیم نظر راجع به پرتغال تامسون چیه من اینجا الان بی جوجه کباب میاد میفهم راجع به جوجه کباب هم صحبت کنه خب من ازت فرسیدم موضوع چیه نگفتید دیگه حالا الان موضوع پرتغال تامسونه پرتغال تامسون اینو پرتغالی که خب تعریفش رو میدونم نظرت راجع بهش نظرم خوبه دیگه. سختی در آوردن استار نداره همین کلی همه نظری که راجع به تامسون داری همینه؟ من زیاد وقتی پورتفول میخورم به نوش توجه میکنم ولی معمولا فکر کنم ما تامسون میخوریم. بعد نظرم خوبه. به نظرت خوبه؟ خب راجع به جوجه کباب چی میخواستی بگی؟ جوجه کباب این که بهش بعضی وقتا زفره بعد ش leave زفره هم میاده بخده جوجه کباب بعد جوجه کباب هم یعنی مرغه مرغ وقتی تیکه میکنن بهش میکن جوجه یعنی همون مرغ میپزن میشه پزن جوجه کباب فری. تیکهش که میکنن اسمش میشه. اسمش می چون تیکه میکنن میشه جوجه من فکر کردم جوجه وقتی بزرگ میشه میشه مرغ همون مرغ تیککش میکنم میشه جوجه یعنی یه مرگو چند تا جوجهش میکنه چند تا جوجهش میکنه اینا من نمیدونستم اینو میام که یه مرغ همون یه دونه جوجه میکنم. اول مرغ بوده یا تخم مرغ اول تخم مرگ بوده آفرین آفرین جواب درستینه میدونی چرا؟ به خاطری که مرغ از تخم مرغ به وجود اومده دیگه بس. تو دوست داری برای پادکست من کار کنی؟ بعدم نید. دوست دارم من بتونم کمک کنم. شغلت چیه الان؟ من شغلم بهش میگم موحصل ولی چند سالته؟ من 16 ساله 16 سالته. فکر میکنی باهوشی؟ در میگم ولی خودم فکر نمی‌کنم. بهت میگن یعنی مدرسه تیزهوشان و اینا میدی؟ بله بله. خب چه کمکی فکر می‌کنی به من بتونی بکنیم؟ من وقتی من قبلانم فکر کردم هیچ کمکی نمیتونم بکنم. تنها کمکی میتونستم بکنم این بود که چی فقط سایت راشتم ریفرش میکردم ببینم چه کمکی میتونم بکنم بعد دیدم ایش کمکی نمیتونم بکنم اه، ولی نبینم شاید اگه بخوان شما پادکستتون یه مدل خاصی رو اینترنت بذارید من شاید بتونم مثلا با چیکوری و اینا یه کار کنم مثلا یه ساب که نز... یه بذاریم مثلا هش... همزمان با این داره پخش میشه سیرنویس هم بیاد بعضی وقتا اما مثلا پادکست شما واسه کسی که شنوایی نداره اینو چجوری میخواد گوش کنه؟ اه اه اه. شاید مثلا ما بخوایم زیرنویسش کنیم بعد همزمان با اینکه داره پخش میشه، یعنی فقط بخواد متنشو بخونه. متنشو فقط بخونه. بعد نوشتن متنشم باعث میشه که تیترا رو بشه جداگانه لیست خب کسی که شنوایی نداره چه ن... چه نیازی هست که همزمان با پخش زیرنویس رو بخونه؟ می... میشه متنو اصطلاحاً اصلا... ترانسکریپت کرد، متنو در آورد و, و متنو داد به طرف اونا که میشنونم بعضی ازشون بعضی جا رو خوب نمیشنون یعنی یعنی شاید یه نفر بخواد خود هم بشنوه و هم بعضی از های متن رو داشته باشه. البته این بیشتر واسه یه پادکستی که مثلا داره آموزش زبان میده اینجوری بهتره. ولی خب الان من گفتم اینم شاید بشه. بد. یعنی م... کمک بزرگی نمیتونم بکنم من. به نظر پادکست من اصلا کمکی به کسی میتونه بکنه؟ بله. چه بل. کمکی؟ قسمت قبلیتون خیلی خوب بود. چش خوب بود؟ فقط من لذت بردم ولی اینکه راجع به کار در صحبت میکنه خیلی خوبه بعد چی کاره دوست داری بشی تو؟ من یه کاره هستم الان ولی دوست دارم همینو بیشتر بشم چه کاره هستی الان؟ من الان نمیدم چه بگم ولی من یه سالو میره که اینترنت دارم از امایی که اینترنت دارم شروع کردم به یادگیری تکنولوژیاش بعد من الان پی پی بلدم این زبان های سطح بالان را اکسرش رو مسلطه میگه جاوا و پی ایش پی و ای ایس پی داست نیست نه ولی خب بقیه رو هاره مثلا خب اینها رو بلدی چه, چه کاره هستی میگه الان من یک کاری هستم الان بهش میگم متخصص تست امنیت توی تست که میزنم یه نفس امنیت یه نفس امنیت بکشت یه نفس امنیت بکشت یه نفس امنیت دیگه هم خب بعد خب ام تست امنیت, امنیت میکنی تست امنیات چند حالت داره وایت یعنی باکس داره یا بلک باکس داره یا اینم گری باکس حالا وایت باکسونه که شما کد رو دارید خب نه اینا رو نمیخواد توضیح بدی من من تا وجود اینا رو بلدم و برای شنوندگانم فکر می کنم جذاب باشه تو،, تو تو به شکل خاص چیکاری من در یه جمله اگه بخوای بگید متخصص تست امنیاتم یعنی برنامه تحت وب تست میکنم از نظر امنیتی بعد از این راه پول در میاری بله. پروژو اینا میگیری رو اینترنت پروژو اینا که الان چند دارم این با شرکت قرارداد دادی با یه شرکت قرارداد دادی آفرین آفرین تبریک میگم پس تو هم باهوشی هم زرنگی هم اینکه بلدی کار کنی پول در بیاری خیلی توانمندی تو بعد یه ایده داشتی برای پادکست من فکر کرده بودی بعد دیگه نفر اول به این پادکست زنگ زدی حتی نفر اول نفر دوم و این نفر اول از آگهی روزنامه هفته پیش زنگ زده بود که قبول نیست سوالی داری از من؟ شما از من سوالی داری؟ من همه سوال همون تو کردم من سوالم اینه که دوست داری توی برنامه تون رو در طرف دزنی؟ آره خیلی منم خیلی دوست دارم خب پس چرا زمانی که پرسیدم یه موضوع داری اینو نگفتی؟ اون موقع الان یا نگفتی؟ حضور زهن نداشتی؟ خب اینو میذاریم برای برنامه بعد خیلی ممنون که تماس گرفتی قربان تو خدا. الو؟ الو سلام. سلام. خوب هستین؟ صدا میاد؟ بله بله. علو. میشه بلندتر صحبت کنی؟ اه، خوبه؟ بله، صدات خوبه. این خونه ما خرابه؟ اشکالی نداره. حالتون خوبه؟ ممنون، ممنونم، آره. میشه اه... بله، بفهمی. من کامرانیم خانم کامرانی بله. سوستن خانم از کجا زنی میزنی؟ من از فهران شهره دی. از فهران شهره دی. برای چی می زنی میزنی؟ برای چی زنی میزنم اصلا امروز موضوع خاصی داری؟ بله موضوع خاصی داریم میشه بگین؟ شما موضوعی ندارین؟ من که کلی موضوع دارم خب یه دونش رو بگین مثلا در مورد همین کتاب امکانتون یا مثلا اینم موضوع خوبی نیست؟ چرا؟ خیلی اتفاقا نظر موضوع. خوبی نه من دوستش ندارم. بلی چی؟ ها اینجوری. خب من بسه. خب یه موضوع دیگه بگین. آ، موضوع بگم مثلا، لقائد نااده... کنترل م... افسرسی امتحانات. کنترل افسرسی. اه. من بعده تو سارا کردن حالا من یه موضوع میدم. بگین. موضوع برنامه امروز پرتغال تامسونه نظرتون راجع به پرتقال تامسون چیه؟ من نظرم نظرمو بگم. آره. میوه خوبی نیست خیلی. چیش خوب نیست؟ به خاطر اینکه به اندازه بزرگه و فکر کنم، میوه هورمونیه و اصولا میوه‌ای که هورمونیه، میوه, میوه خوبی نیست. شما دوستش ندارین؟ قبلا من خیلی دوستش داشتم ولی الان. چند سالتونه شما؟ من 22 سال. 22 سالتونه. من یادم بچه که بودم. اون موقع پرتقال تامسون یعنی نمیدونم چند هم بود ولی پرتغال تامسون مثلا برای اولین بار یه روزی اومد یعنی یه سالی اولین بار ما فهمیدیم که یه پرتغالی هست به نام پرتغالی تامسون که توش بچه پرتغال داره و اون موقع خب چون یه چیز جدیدی بود و ما بچه بودیم و اینکه داخل یه پرتغال یه مجموعه پرتغال دیگه است و مرزش هم با پرتغالی که ما تا اون زمان خورده بودیم خیلی فرق میکرد این به عنوانی یه پدیده نوع جذابیت داشت. مثل اونایی که برای اولین بار با پیتزا یا با چه میدونم هواپیما مواجه میشن یه همچین چیزی. بعد, بعد کم کم این پورتغال تومسون همه بهش علاقمند شدن. اونقدر بهش علاقمند شدن که من فکر کم همه باغدار ها شروع کردن به تامسون کاشتن، درختشونو عوض کردن، شاید به قول شما مثلا هورمون و اینا زدن بهش و بزرگتر میشد، به تر بود. مردمم دوستش داشتن چون درشت بود. چرا اصلا همه میوه درشتو دوست دارن؟ بله. چرا؟ به خاطر اینکه فکر میکنم میوه مجلسیه، هم مثلا نشون میده که مثلا اینا پول زیادی بابت الو. گوش گوش می کنم. من یه ذره تلفنم ممکن صلاح قطع... صلاح شما قطع بس شاده صدای خودم بعد میوهی مادیدسیه بعد هم مثلا نشون میده که مثلا پول داره این نشوننده اینه خود مامانم حبی... داره اه... ولی مزه نداره خیلی من چه چه... و بعدم ببینید اه... مثلا قبلا مثلا 50 جور چه چل... جور پرتغال یعنی هر پرتغالی که شما میخوردی؟ یه مزه ی میدادیه، پوستش یه رنگی بود بافت داخلش اندازه پره‌هاش یه جوری بود الان تقریبا میشه گفت مثل موز شده همه پرتقال‌ها شکل همه کله همه چی بی شده. همه چی بی شده ها خیلی چیزا مثلا نمیدونم خیلی چیزا انگار اصالت خودش از دست داده الان من نمیدونم قبلا چه جوری بوده ها بله خب مثلا از تعریفایی که بزرگتران میکنن مثلا سال‌های قبل و اینا هر کی بی‌سایه صدا داره. به نظر شما آدما هم همه دارن مثل هم میشن؟ آدما نه مثل هم میشن. من آدمای زیادی ندیدم تو زندگی که بتونن بگن مثلا تو مدرسه‌تون یا تو شما دانشگاه میرین؟ بله. تو تو کلاس‌تون همه مثل همن یا هر کسی فردیت خودشو داره؟ مم. ما تو مدرسه‌مون نظام یه مرسه خاص بود. بعد همه اینو هم, هم بودیم. خاص یعنی تیزهوشان و اینا؟ آره. چرا هر کی به من زنگ میزنه تیزهوشانه؟ خب واقعاً طرف شما فقط برای ماها مخاطب داره. یعنی میتونه مخاطبش ماها باشیم یعنی کسایی دیگه فکر نکن بچه های دیگه خیلی نمیدونم مثل ماها فکر نمی کنن مثل ماها ریسک نمی کنن مثل ماها زندگی نمی کنن دوست دارن یه زندگی یعنی, یعنی میتونیم بگیم در یه جمله اونایی که مشکلات اجتماعی روانی فردی ندارن جذب طرف من نمیشن. من خودم مثلا دارم با دوستان خودم من چاید تنها کلاس کلاسمون باشم توی کرده یعنی کلن آره دیگه یه آقا پسر بعد مثلا خیلی همه بچه ها خیلی مثلا یه, یه،, یه،, یه جایگاه مثلا یک نواختی که پیدا کنم به شدت سعی میکنن که مثلا اونو نگه دارم و برایشون خیلی جذابه. ولی مثلا من که پاسدانش را قبول شده بودم بعد بر من اصلا رشته خیلی بیخواستیتی بود چه رشته ای؟ فیژیوتراپی سیدهشتی میخونده میخونده این یعنی تموم شد؟ نه یعنی میخونم هم. بعد همه مثلا خوشحال بودن کلی مثلا روزه من واقعا ناراحت بودم این واقعا واقع مثلا تماه اول ناراحت بودم از چی ناراحت بودین نه خاطر این مثلا روزه هم ناراضی بودم اون چیز این محبوب مقب... خودش دیگه ام به اندازه کافی درخشان نبود. من تهران می‌خواستم، شد ویدیو تراپی بهش بگم. کلاً می‌دونید مثلا احساس می‌کنم واقعاً همینطوریه. مثلا بچه که تو بود درس می‌خونه، واقعا تواناییشون بیشتره. بعد من ازه... نظر نمی‌دونم از چه نظر، ولی خب بیشتره. اما مثلا بحث دیگه که میان، اصلا اینجوری نیست. من نمی‌خوام مثلا در این بحث خیلی جالبی برام نیست که بخوام در این شما بین سه تا شغل کار کردن توی کلپزی، نظافت منزل و کشیر یه سوپرمارکت بزرگ کدوم انتخاب میکنی اگه مجبور باشیم؟ کلپزی، کشیر سوپرمارکت نظافت منازل مم. نظافت منازل تظیم در فوشنده باشیم بین این ستا شغل کدوم انتخاب میکنی؟ کمی کشیر یاد توی سوپرمارکت ملاک انتخابتون رو میشه بگیم کار کردن توی منادر م... کار یدی می‌خواد من خسته می‌شم من حوصله این کارام ندارم. اون یکی آشپزیام کله‌پزی و... خی... ب... و اینا خیلی کله‌پزی این و اینا خیلی خوشم نمیاد. بعد کله‌پزی اینا خوشاینده باشه. آلم... فروشندگی نیست و کشگیره یعنی شما فقط این, این مارکت کار کنم مثلا بخوام نه این ها دیه اینا شهرهای خرید رو روی اون کانتر میذارم و شما اینا رو اسکم میکنین و پولشو میگیرین خب این باوش کار باوش تکراری باوش شما که یادم باهوشی هستین و در حد مرگ خسته نمیکنه تکراری بودنش منزل و من آدم اینو گفتم. به هر صورت سابقه تحصیلیتون اینو مییه آخه از اون دو تا کار دیگه بهتره به از اون دو تا دیگه بهتر شما سوالی هم من دارین؟ خیلی. خب یه دونهشو بفر... بپرسن. یه دونهشو بپرسم. من کلاً پلن... کتابتون که میکبار... میشه یه تاریخ اصلا وقت هست که ما صحبت کنیم؟ نه زیاد. بزنید. ولی خب در حد خلاصه یه خب تو مربوط رو به کتاب امکان یا مشکلات خیلی خاص روانی نیست بگین. جانم تو دیگه اینقدر وقت دارم؟ هر چقدر که این گفتگو جذاب باشه آها، هم من که قطع می‌کنی. آره، ممکنه قطع کنم. اوه، من خیلی می‌ترسم قطع کنی. خب، نترسین، بگین. کلاً ها نمی‌دونم نسبت به کتاباتون چه نظری داری، اما من پارسال یه کتاباتونو می‌خوندم. کتابامو؟ دو تا کتاب داشتم. خب، یه دونش کسایی نمی‌شه شد کتابه. اوکی. بعد تو وضع روحی خیلی بدی بودم <متصفيق> در دانشگاه و موضوعات من آتفی رویدم بعد از این کتاب به شما خوندم شروع کردم به کار رو کردن خب بعد مثلا دقیقا موقع نتیجه نگرفتم یه بوده یه ماه بعد یه حرکتی کردم و اینا بعد این قضیه موجه شده ازدواجم اوکی مبارکه <متصفيق> آره برای خیلی ارتفاقای خوب برم افتاد بخواهرم نیکی درگیر این قضایه بودم و اینا تا. یه حدود یه هفته پیچ که دوباره این فایلتون رو تویین بیست دانلوڈا کنم یعنی ازدباش کردین یا هر هر هنوز مقدمه شد نه ازدباش کردم بسیچه رو منو عرسی دعوت نکردین یادم نبود واقعا نه باقی یعنی واقعا اگه کتاب من باید شده که شما ازدباش کنین حالا پنگ درصد حق نبود که منو عرسیتون دعوت میکردین بگم من یه چیزی رو بسن ما خیلی جشن گرفتیم. بعد عق... عقد جشن ازدواج تعریف نگرفتم اگه جشن, جشن, جشن بگیریم من دعوت می‌کنی خیلی آه، آه، آه، خیلی ممنون خیلی ممنون. بعد همین دیگه دوباره یه هفته پیش این فایل شما رو چک کردم اون وقت دوباره فایل شما رو پیدا کردم من شروع کردم بخوندم بعد نزدیک امتحانا مه من همسرم هم دانشوان ایشون هم امتحان داره بعد کلا ما به هم روحیه میدیم و اینا بعد کلا استایل نمیدونم احساس میکنم حرفایی که تو کتاباتون مزدین خیلی خیلی دقیق میذاره رو نقطه حساس آدم به آدم مثلا میگه که چیکار باید بکنی الو بس... <تصفح> بسیار خوب نه ببین شما اگه تا صبح از کتابو خود من تعریف کنید برای من جذابیت داره ولی فکران برای شنوندگان پادکست دیگه خیلی خوب نباشه خیلی ممنون که تماس گرفتین. باز بازم زنگ بزنگ بله؟ ها... <تصفح> کدوم اتفاق؟ میکنی <تصفيق> من قدر نمی ببین کسایی دیگهم تو سفر انتظارن و من فکر کنم دیگه در همین حد این گفتگوی ما برای این جلسه کفایت میکنه ممنون شما لسک کردیم خیلی ممنون که تماس کردیم خداحافظ. خداحافظ. علیه مراد الو؟ سلام آقای, سلام آقای مراد چطوری؟ ممنون خوبی شما؟ خیلی ممنون شما چطوری؟ من خوبم شما خوبی ما خیلی خوب استقبال خوب بود امروز؟ الحمدلله کاسبی خوبه دگه یه خوب. دو سه نفری زنگ زدن خوب خدا شد این هفته هم استخدام دارین؟ استخدام ما همی... یعنی تا زمانی که استخدام نکنیم هست شما دوست داری استخدام چی؟ من برای کارگر ساده خیلی دوست دارم اه، اه، پوزیشن کارگر ساده نبود. دلیل اینکه من در کارگر ساده زاین یعنی آگاهه کرده بودم میخواستم آدمایی با بک‌گراند با مختلف تماس بگیرن آها این فقط هم مدیر برنامه بود آره پوزیشن مدیر برنامه است مانتا ها دیگه خب حالا همون مدیر برنامه هستی خب چه کمکی میتونیم من بکنیم آها من فکر کنم کمک‌های زیادی بتونم بکنم اول یه دونش رو بگو آره اولیش اینه که یه کارایی که همه دیگه هم میتونم بکنن مثل این یه روزایی که شما نیستین من بشه بشه گپ با علی مراد و برنامه از ریس نیفته خب این که این که خیلی خیلی خوب نبود آره این خیلی خوب نیست ولی حالا یه چند تا چیز خیلی خوب نیسته دیگه هم دارم نمیگم ولی چیز یه چیزی نگو که با،, با با با چیز با اون حس منیت من تداخل داشته باشه. آره راست میگی. <تصفح> <تصفح> من, من رئیس تو باش. <تصفح> شونه های شما رو میمالم. یه کاری میتونیم بکنید. جانم هر موقع کسی زاین نظر به من زاین بزنه و با من گپ <تصفح> <تصفح> خب دیگه چه کار نه ولی حالا جدی من به نظر من کاری که الان میشه برای پادکست کرد اینه. این پادکست شما با دو تا چالش مواجه. یکی اینکه که پادکست گابو علی سخاوتیو کسی نمیشناسه یکی این که اصلا کسی نمی‌دونه پادکست چیه. سومیشم اینه که کسی نمی‌دونه علی کیه. علی سخاوتی کیه؟ تا چالش. آره سه تا. حالا نگاه کنین باید هر سه تاش حل بشه تا این پادکست پیشرفت بکنه، یعنی مخاطب جذب بکنه. حالا من فکر میکنم کاری که مثلا من میتونم کمک کنم اینه که یه برنامه‌ای پیاده بکنم، پادکستهای مختلفو معرفی بکنم. روی صفحات مجازی بذارم شعر کنیم اینجوری الان مثلا من خودم قبل از اینکه با شما پادکست شما افتتاشم با سه تا پادکست دیگه هم آشنا بودم فت... خب حالا فرض کنیم چون تو دوست داری پادکست خودت هم داشته باشی و من خیلی خیلی مشتاقم که اصلا تو این, این کارو بکنی خوب. فرض بکنیم که پادکست پادکست توه و من زنگ زدم تو منو استفاده کنی آره دو دقیقه باطوری از من مصاحبه کنی باشه آقای سخاوتی شما سوابق کاریتون چیه؟ من مدت زیادیه که بیکارم. خب، یه مدت کوتاهی کارای فنی کامپیوتر مثل مدیر شبکه و اینا بودم. بله. ولی مدت زیادی که اه بیکارم دیگه. آها یعنی در حال حاضر هم شغل خاصی ندارید؟ نه شغل خاصی ندارم. حالا بر شغل چه کاری میکنین؟ یعنی درسته که کار درآمدزایی ندارین ولی چه کار روزانه‌تون چیه؟ بالاخره فهمش که نمی‌خوابید. نه همش نمیخوام صبح که پامیشم میشم سبونه میخورم مقدار زیادی تو اینترنت میچرخم. تو اینترنت، آره تو اینترنت میچرخم بعد اه، اه، با دوستان بیرون میرم، استخس میرم، کتاب زیاد میخونم. آها کتاب بعد خیلی وقتا اصلا میشینم به در و دیوار نگاه میکنم، بعضی وقتا حال داشته باشم ساز میزنم. خب ترومپت میزنید؟ بله میزنم. خب خوبه. می اه... م... مینویسیم چه کمکی به نظرتون به پادکست کمکی که به پادکست شما میتونم بکنم اینه که تالور جوش فکر نکردم. خب الان ایده برین چی میتونیم بکنیم؟ ایده برام بسازید. ایده برینتون. یه خلاقیان فکر کردن داشته باشید. از کجا این فکر رو می کنین؟ از اینکه آدمی که کتاب می خونه بعد خیلی گرفتاری و شغلی هم نداره و روزی روز 10 می مینویسه حتما وقتی دیگه ذهن خلاقی داشته باشه آره همین دهتا ایده من میتونم برای هر جلسه پادکست شما ده تا تم مختلف ایده بدم من دو خیلی ممنون بسیار خوبی بود موضوع امروز می‌دونم چی آقای مورا پرتغال تامسون پرتقال تامسون نظری راجع به تامسون چیه خیلی غیر گرونه دیگه و هیچ مزیت نداره فقط اجتماعی شده تامسون من فکر کنم بعد از قرارداد گلستان یا ترکمنچه های خب تامسون شدن یا تامسونیزیشن بہترین اتفاقی بوده که برای ایران افتاده یعنی چی؟ یعنی ببین دیگه شما هیچ پرتغالی بیرز پرتغال تامسون تو این فصل نمیتونید پیدا کنی. آها آره و بعدم درشت بدون آب بیمزه است میدونید حس پرتغال ف... دیگه نداره نداره اصلا دیگه. نیست انگار بعدی و من این، این ما من میگم اینم تامسونایز شدیم از بر... یه مدتی به بعد زمانی به بعد هم آره هم خیلی از آدما مثل پرتقال تامسون شدن هم خیلی از چیزای دیگه یعنی چه مثل پرتقال تامسون شدن یعنی خیلی ظاهرشون گنده است ولی کلاسن ولی نه آب داره نه مزه داره <تصفح> هم همون به هم شبیهن آره همون هم به هم شبیهن دیگه یعنی مثلا بگیم یه تعریفی از خودت بکن مطمئنی که توی یه قالب خاصی آره. هستی این چیز که میری میره تره بار که میری شما از استان تماس میری آره تماس. استحانم تره بار داره شهر... شهرداری آره... میادین میره تره بار نه میدون اصلی داره که چیز باشه ولی نه اونجوری مثل تهران نداره مثل تهران نداره نه مثل تهران ولی اصولا حالا هر جایی که میوه میفروشن بری مثلا این جعبه های پورتغال تامسونو که نگاه میکنی این جعبه های جدید و شیکم اومده که توش این پلاستیکی ها که جای پرتقال آره، آره. توشه همون پلاستیکی پلاستیکیه بعد یه چیدی توشه آره بعد اینا همه قشنگ یه اندازه توی اینا جا شده و یعنی آره. شما می‌تونید بازش بدین آره حتی حتی به اندازه من بزرگن آره از اندازه یعنی نه از یه اندازه میتونن کوچیک‌تر باشن نه از یه اندازه بزرگتر آره مثلا پرتقال تامسون ریز دیدیم شما نه دیگه اصلا تامسون نه. نیست دیگه تامسون نیست دیگه تامسون اینا رو می میدرید اینا یه فرآیند داره توی به نام اون ریزا رو اصلا دور دورنگار. من مثلا فقط نه باید میان بریزن دور شاید اصلا ریز نداره. ولی سورتینگ بعد دقت کنین هم ها رو چیز میکنن مثلا یه تامسون از این وری ایران وگوی تامسون از اون وری رو مقایسه کنین سایزشون فرق داره. ولی همون تامسون جنوب دارین. نه هم اندازه‌ها رو می‌ذارن توی جعبه بعد دوباره جعبه‌های هم تر رو با هم چیز می‌کنن. این توی توی اجتماع و بین آدم اتفاق میفته اینا آدما سورت میشن؟ احتمالا وقتی که میگی جا استخدام کنی یه سری سوال، کلیشه ازت بپرن بعد اگه یه خوند رد میشی، سورت میشی کردن میگن معلم‌ها فلان جورن بعد میگن بحثس نزن. میگم آخه نگاه معلم معلم‌ها هم از یه فیلتر رد شدن. اه. یا مثلا میگیم که آبدارچیا فلانن. یه دوستی من دارم خیلی مذهبیه میگه خادمای مسجد همه یه اخلاقی خاصی دارن. من به خاطر خادم می‌برم. صح... شدن اینا. شدن انگار. آره بعد توی محیط هم که بودن، توی محیط یکسان بودن دیگه. یه مم. تاثیرات خاصی گرفتن. مثلا خدمهای مسجد همه بچه ها میون تو مسجد چی میکنن. بعد برای همین همشون با بچه ها بدن. مم. داد میزنن سر بچه ها اینا. اه... آره آقای فخرمتی استخداممون من حالا هیچی نمیگم ولی من به بهش شغل نیاز دارم. ببینید <تصفح> اه... من اه... نمیخواستم اینو به بش... اه... تماس ها بگم. ولی تو که اینقدر مشتاقی این پادکست این هفته رو که دانلود بکنی خوب. در ابتداش من یه جاب دیسکریپشن مفصل از این شغل گفتم یعنی اون رو شما بشنوی دیگه کامل میدونی که چیکار باید بکنی حالا من یه ایدهی هم داشتم خواله بگم بگو. نگاه کنین الان پادکست شما یه دونست خب بعد وقتی یه کسی میخواد اینا انتخاب بکنه انتخاب همیشه بین دو تا چیز اتفاق میافته و شما رقیب ندارید من میگم شما بیا با بودجه شخصی یه رقیب فیک برای خود درست کن ب... مثلا مغازدار ها این کار رو میکنن ترسون، ترس... اینا اینا اینا این کار از همون کارهای درشتسازی تامسونیه دیگه من آه. تنها خودمم. علی جون. آ راست میگی. آره من, من فقط با خودم رقابت می خواهی از اون کارا نکنی نه دیگه ببین درشتزازی تامسون یعنی شما اگه پادکست داشته باشی دوست داری پادکست تو تامسون هاییز بکنی نه نه ولی دوست دارم مثل بچه آدم آبدار درشت باشه خب اه اه مهم نیست درشت باشه یا ریز مهم اینه که آبدار رو خوشمزه آره باشه دیگه باشه. آره حالا مهمه که پادکست منو مثلا ده نفر گوش میدن یا ده میلیون نفر نه مهم نیست. آره. خب پس. شما اگر اونجا بیسکرپشن رو بخ... گوش بدی آره. من فکر بکنم که یکی از کاندیداهای های خیلی جدی این شغل توی. بعد آقای سخابتی جانم این از راه دور هم میشه این شغل گرفت همه اطلاعات و جزیات در اونجا داده شده آره خب پس گوش میدن اه... دیگه سوالی هم من داری دیگه؟ نه دیگه فکر کنم باید تمام کنیم بایدی نداره تو بین سه تا شغل نظافت منزل کشیر یه سوپرمارکت و کار کردن در کلپزی کدوم انتخاب میکنی اگه مجبور باشی؟ کشیر سوپرمارکت کشیر سوپرمارکت عزیزون خیلی ممنون که تمام گرفتی خیلی خوش آرشتم برگونتو برگونت و... شما فعلن... خدا زهرا خوران هستم. الو؟ الو؟ بفرمایید. سلام. سلام. باشید. سلامت باشید. می‌خواستم جهت این کار روانشناسی تماس گرفتم. شما روانشناس هستین؟ بله. خانم خوران این مصاحبه تلفنی ما فقط زفت میشن نظر شما خیلی نداره؟ نه این یه برنامه پادکست میدونین چیه؟ بله. پادکست میدونین چیه؟ نه نه نه. پادکست یه برنامه مثل برنامه های رادیوه فقط روی اینترنت منتشر میشه. خب. و این پادکست منه به نام پادکست گپ با علی سخاوتی که من باشم. بله. هر هفته آدما تماس میگیرن و راجع موضوعات مختلف با من صحبت تلفنی میکنن و این روی اینترنت منتشر میشه. خب. از نظر شما و وظیفه یک روانشناس این چه کمکی میتونه به آدم بکنه؟ ورزیدگی یک روانشناس؟ بله اگر واقعا ورزیده باشه بتونه اثر نه نه میگم از دید یک روانشناس که شما هستین بله این برنامه چه کمکی به آدم میتونه بکنه اگر م... چیزهایی باشه چیز که کار بردی باشه تو زندگی م... جواب میده نه. یعنی م... چیزهایی که قرار روی اون برنامه بیاد روی اون وب بیاد, بیاد روی اون برنامه که حالا شما میگین بستگی داره به اینکه چقدر کاربردی باشه تو چه موضوعاتی مانور بده من حالا یه،, یه نمونه میشه مثال بزنیم که کاربردی باشه ببین الان مثلا بگین متناسب با مشکل روز جامعه هر چیزی که یا بیشتر اینکه گذار باشه روی مشکلات بیشتر جوونا باشه چه بدونم زندگی خانوادگی باشه طرح این برنامه اینجوریه که آدما بیشتر راجع تجربیات شخصیشون صحبت میکنن خ راجع راجب این چیه یعنی آدما تماس می گیرن مشکلاتشون صحبت میکنن و شما... مشکلات سرفا نیست منظورم از تجربیات شخصی بونید همه ما امکان داره در مورد یه سری چیزهایی که تجربه نکردیم نظری داشته باشیم تئوری داشته باشیم مطلبی خونده باشیم فیلمی دیده باشیم و میتونیم راجبهش مثلا ساعتها صحبت کنیم مثلا چه میدم راجب اقتصاد ایالات متحده آمریکا. ولی به شکل فردی اینو ما تجربهش نکردیم یکی از مشخصات این برنامه اینه که فقط راجب چیزهایی که یه نفر تجربه مستقیم فردی داره صحبت میشه توش خب بعد اینا یعنی تم... راجب تجربیاتشون حالا هرچی نظراتشون صحبت میتونم موضوع برنامه... داره برنامه دیگه در حول اون موضوع مثلا موضوع امروز میخواییم بدونیم چیه؟ بفهمیم موضوع این برنامه پورتغال تامسونه بعد مورد تامسون صحبت آره مثلا آره هر کسی تجربه نظر حسی رو که راجبه این پدیده داره میگه خب بعد این چه قراره بکنه؟ میگم می سوال من از شما اینه که به عنوانی روان شناس فکر میکنین مثلا هفته پیش در درباره در در شغل بود شما آگهی هفته پیش رو تا این هفته داشتین چون این آگهی هفته پیش چاپ شده بود بله, بله. میتونم بفرسم چرا من آگه رو دیدم بعد شما زده بودیم دوشنبه ها متضرش دام دوشنبه این هفته برسه تماس میگیرم آره هفته پیش مثلا در مورد شغل و آینده شغلی بود خوب موضوعات مختلفی داره دیگه میدونی من الان متوجه نمشم. اصلا هدف شما چیه قراره که چیکار کار بشه چی کار؟ یه جوری الان گنگم روشن نشدم هنوز <تصفيق> الان... اصلا م... نمیدونم قراره چی کار بشه ما اصلا چرا داریم صحبت میکنیم تیهربند من برای توسعه این پادکس اولا که من برای توسعه این پادکست دنبال یک یه کسی میگردم که بهم کمک بکنه به عنوان همکار خب بنابراین توی جاهای مختلف هم دنبال این آدم میم یعنی مهم نیستش که تجربه کاریش مدرک تحصیلیش رشته تحصیلیش مهم نیست حالا مثلا توی فیلدهای مختلف آگهی میزنم میگردم که هر کسی که فکر میکنه این کار می‌تونه براش مناسب باشه جذب این کار بشه این قدم اول چیز دومی هم که شاید براتون مبهم باشه یعنی کاری که الان ما داریم کنیم شما برای آگهی تماس گرفتین مصاحبه برای این شغل اهم مصاحبه داره تلفنی اتفاق میفته داره اتفاق میفته و بخشی از همون پادکستی که بهتون گفتم خب بعد شما توی اون کاری که انجام میدین مستقیم یا غیر مستقیم آدم ها صحبت میکنین در مورد تجربیاتشون یا در مورد اصلا هر موضوع دیگه آره اگر میتونن موضوعی پیشنهاد بدن میتونه من موضوع بهشون پیشنهاد میدم مثل موضوع امروز که پرتقال تامسون خوب بعد مثلا ببخشید من دارم فاهم می‌کنم بعد مثلا پرتقال تامسون مثلاً در موردش صحبت می‌کنین اون چه کمکی قراره به اون آدم بکنه یا اون آدم مثلا چرا در مورد این یعنی به خاطر مشکلش میاد نه لزوما و... مشکل نیست میگم من من صح... روانشناس خاصیم به خاطر خود برای منه. نه، فقط روان شناس باله، من میگم فر روانشناس نیست من بله بله پس از... این یه برنامه اینترنتیه آره پس قرار نیست که لزوما روانشناسی بکنی ها رو م... میگم از آدمایی با پیشینه تحصیلی و مهارتی مختلف رو من جستجو میکنم ببینم واقعا مناسب ترین فرد چه کسی میتونه به من کمک کنه توی توسعه این کار فهمیدم بعد در مورد هر زمینه‌ای هم که باشه صحبت می‌کنیم دیگه درسته آره موضوعات یعنی محدودیت خاصی نداره بعد ببخشید هدفتون چی از این کار ای، این سوال من از شماست یعنی من, من میفرستم که شما فکر می‌کنین چه کمکی میتونه بکنه من اصلا الان خودم متوجه نیستم که شما می‌خواید با این به چی برسین که من, من من هدف خاصی ندارم من خاک می‌کنم یعنی م... مثلا منظور که این یه سرگرمیه یه اوقات فراغت این نه واقعا با هدف کمک به مردم یا چی اصلا من نمیدونم که من ببینم خودم واقعا به درد این کار میخورم یا نه ببینید بعضیا میگن که حالا مثلا دو سه دو هفته قبل این ضبط شد این برنامه ثومه بعضیا معتقدن که این میتونه کمک کنه که خودشونو بهتر بشناسن یا به یه سری چیز یه سری چیزا رو توش کشف بکنن یه همچین ارزشی میتونه داشته باشه شاید شاید در اینحال سرگرم سرگرمم بشن بعضیا سرگرم میشن شما مثلا یه برنامه رادیویی مورد علاقتون رو گوش میدین هم سرگرم میشین هم امکان داری یه چیزی یاد بگیرین بله بله فهمیدم یه دو نفره که ممکن در مورد هر چیزی باشه و بیشتر هدفش سرگرمی و در کنارش آموزش یک سری چیزها یه اگه دقیق‌تر بخوایم بگیم هیچ هدف خاصی نداری بله. یعنی هر هدفی میتونه باشه و هیچ هدفی هم نیست بله, بله. اما گرفتم حالا فکر میکنیم که کمکی میتونیم بکنیم یه جور فانه دیگه به نظر من یه جور فانه که ممکن استان هیچ هدفی رو دنبال نکنه نمیدونم واقعا نمیدونم بسیار خوب خیلی ممنون که تماس گرفتم خواهش میکنم خدا نگهده خدا حافظشون خدا حافظ. الو الو سلام سلام سلام خیلی ممنون. شما خوبین مرسی. سلامت بسیم. من با آقای چه خوابتی درم صحبت درم دیگه. کاملا درسته. شما خودتونو معرفیم کنین؟ من اله ربی هستم. خانم ربی؟, ربی هست. بله. چقدر صداتون آشناست؟ چطور؟ آره. ما قبلا با هم حرف نزدیم؟ نه. فکر نکنم. نه. از کجا زنی میزنید؟ من الان... از شهر کرد شهر کرد خب موضوعی داریم برای این برنامه؟ موضوع نداره این برنامه موضوع داره ولی شما موضوعی نمیخوایم پیشنهاد کنین؟ نمیدون من یه موضوعی تو وبلاگتون پیشنهاد کردم ولی خب البته بعدش که فکر کردم به این اصطور که همون بهتر که این موضوع نباشه موضوع شغل؟ آهای شما پیشنهاد کرد موضوع شغل آره آره خب دلده. چرا بهتری که نباشه خب من اون روزی که این من اون روزی پیشنهاد اومد که تازه گف قبلی شما را گوش داده بودم بعد اون روز یه خورده جذبیر بودم و اینا خیلی واقعا کی سوالت... میخواد راجع به شغل بشنوه یعنی چی شغل برای چه کسی جذابیت داره چیزی چیز جذابی نیست همه ازش فرارین نه شغل. من نه. ازش فراری نیستم فراری نیستین شغلتون چیه نه من به خاطر اینکه من فعلا مثلا دانشجو هستم پس میشه گفت به انگلیسی ها تکنیکی ازش فراری این دیگه. چی کردم؟ دانشجوی چی هستین؟ من دانشجوی ارشد هوش مصنوعی هستم. ارشد. البته خب نباید دانشجو باشم چون که پایان نامه من طول کشید الان دانشجو بیشتر از شغل تا جایی که میشه از شغل فرار میکنین نه البته. من خلاصم الان به تفصیل من این نه نه نه اتفاقا از انتظر کتاب امکانه شما را خوندن این فکر دکتر خوندن از سرم افتاد حالا جالبه من دارم کتاب می که سی دلیل برای اینکه باید دانشگاه رفت چطن؟ آره و این کتاب که باید کتانی رو که به خاطر کتاب اول من دانشگاه رو ویل کردن یا بیخیال شدن من فکرم توضی زیادی عصبانی خواهد کرد نه البته من از آوانی نخواهم شد من با 30 سال در این چیز گذاروندن دیگه از کافی فکر میکنین تحصیل کردین دیگه آره دیگه آره فکر میکنین کافی بوده آره احساس میکنم دست... کافی بوده دستاورده این چند سال گفتین بیست سال 20 بیس سال آه... نفهم بیس سال گفتین چند سال من درس موندم آه 6 سال من آه 6 سال من فکرم آه. با اون دوازده سال قبلش می خب چه دستاوری داشته این مدت پر تو؟ دستاور بخواستی نبسیم میشه گفت من واسیت بسیم تا با حال یک زندگی منفعیل رو تجربه کردم در این دورانی برسوندن احساس می‌کنم که یک زندگی منفعیل رو تجربه کردین ببینی تجربه کردن اصلا خود تجربه کردن یه چیزیه که درش فاعل بودن داره و اصلا نمیشه نمیشه شما منفعل بودن رو تجربه کنین اینی این که میگین در خودش یه تناقضی داره خب البته خب شاید من چه که تجربه نکردم ها ها منفعل بودم الان بودی. تازه دارم که آره منفعل بودم و نمیخوام از این دیوال منفعل باشم <تص> با و احساس حالا اگر که یه لا فاصله برم دوست تا احتمالاً حالا برم. حالا که میخواین منفعل نباشین چی رو می‌خواین اولین چیزی که می‌خواین تجربه کنین چیه اولین چیزی که می تجربه کنم، نمی میخوام که هر زودتر یک تجربه داشته باشم. هر چه زودتر می خوام تجربه تجربه عرصه. کردن داری؟ آره آره. مثلا دوست دارم مالی چه زودتر یک کاری داشته باشم و الان خیلی دوست دارم که استقلال مالی داشته باشم. مثلا استقلال مالی. الان بیشتر به منفعل نبودن نبودن من. شما می در به عنوان مدیر برنامه این پادکست استفاده بشین که هم تجربه یعنی استقلال مالی پیدا کنین همیشه کاری رو تجربه کنین. چرا که من؟ می‌خوام می‌خوام مسافر باشیم. بالا می‌خوام. مسافری شغلی بشین. آره آره. شما به این سه تا شغل نظافت در منزل، کشیر سوپرمارکت و کار در کلپزی اگر مجبور بشین، کدوم انتخاب می‌کنین؟ دو ومی کار در سوپرمارکت، مارکت کشیر سوپرمارکت. آره اینا همه شده مصاحب است این سوال نظرتون روزه پرتقال تامسون چیه؟ ترجیمی دم از اون ساده بخورم تازه گیم که همه چیز سراتان زاست اینا ساده هاش کدومه؟ غیر تامسون غیر تامسون همین کچولوهای هست مگه پیدا میشه هنوز؟ آره هست؟ ما پیدا کرده بود با خریده بود خب مشکلتون با پرتوال تامسون چیه که ترجیح دید اونا رو این سر تانزه بودنش تامسون رو تانزه؟ هستی آره کلا این خوشگل بودنش مثلا خوشگلش برد بعد اینکه زیادی آب داره تامسون زیادی آب داره؟ آره آره و خیلی هم بیمزه آها، هسته. یه خوشمزه بعد سوال بعدی شما میدونین حلیم چجوری درست میکنن؟ نه، نمی‌دونم. ا پادکست من به چه های گوش میدین؟ ا من پادکست ها واقع گوش من رادیو اصلا که مو مذاکره جناب شعبان نه نه. پاد... پادکست. پادکست با. نبودم با آ... آشنا آره، تازه بعد از شما شدم. م... بعد که آشنا شدین اطلاعاتتون رو توش دادین؟ نه <تصفيق> م... ندادین. ام... بسیار ش... شما سوالی هم من سوال؟ بله بسن؟ <موضیح> این برای من خیلی هیجان انگیز بود همون جلسه که یه می جلسه adore... قبلی که گفه شما رو بوش دادم خب؟ بله که اینکه یادم اینقدر جسور باشه که بگه که من الان از هیچی حول در میارم و <موضیح> توست دارم که این جسارت یه روزی منم پیدا کنم. شما صحبت نداریم؟ من این زمانی که من چطور میتونم ی یا هم این باشم؟ جسارت ببینید شاید این که اولین مانع اینه که میگین از هیچی پول در بیارم و فکر میکنم این خودش یه ذره محدود کننده است اولین قدم اینه که ببینید اولا این که هیچی وجود نداره یعنی در طول تاریخ بشر اگر شما به عقب برگردین هرگز هیچ وقت هیچی وجود نداشته یعنی هر کسی بلاخره یه چیزی دروبرش بوده دیگه مونتا زمانی که شما اونا رو نمی اون چیزها میشه هیچی و بعد میگین که من هیچی ندارم و خیلی ها هستن که هیچی ندارن بنابراین ما وقتی میگیم که من از هیچی یه چیزی می سازم خیلی ها با این ارتباط برقرار میکن و اینو به عنوان یه فرمانیه جمله منطقی قبول میکان در سازی که اصلا هیچی وجود نداره یعنی بالاخره یه چیزی هست حالا من شعارم می که من از هیچی و همه چی یه چیزی میسازم یا یا هرچی. Uh -huh. و از خودم و دیگران شما اگه به خودتون و دیگران و اون هیچی و همه چی نگاه بکنین و ذهنتون خیلی جای دور و غیر قابل دسترس نره بالاخره یه چیزی پیدا میکنین که باهاش یه کاری بکنین حتی اگر اون کار خریدن پرتقال به جای پدرتون باشه. بعد از یه مدتی که اینو تمرین بکنین میبینین که داره به یه level های بالاتری میره و امکان داره با به شما کمک بکنی که پولم در بیارین یا از, از این کار لذت ببرین با کسای دیگه ای آشنا بشین فرایند به این شکله یعنی اینجوری نیستش که مثلا شما به یه نقطهی برسین که جسارت از هیچ پول در آوردن پیدا بکنین اینجوری نیست فرمولش این نیست فرموله یعنی قدم اول اینه که چشم و گوشتون رو باز بکنین و به برتون بهتر نگاه بکنیم. و اون چیزیا رو که ببینین بعد اون وقت در تکرار و تمرین این فرایند اگر اینو با کافی شاگردی بکنین میبینیم که بعضی وقتا از سوش پول درمیاد، بعضی وقتا از سوشه رابطه درمیاد، بعضی وقتا از سوشه درس یادم میگیره، چیزی یاد میگیره، بعضی وقتا بهش خوش میگذره، بعضی وقتا میخوره زمین و یه جایش درد میگیره ولی خوب خود همون هم لذت بخش اینه داستان پول درآوردن مهوریت نداره توش آه. آه. تا موضوع این برنامه چی بود؟ <تصفيق> موضوع این برنامه مصاحبه شغلی و پرتغال تامسون بود یعنی دوتا موضوع بود که من برای شما میکسش کردم برای سادگی کار <تصفح> <تصفيق> خیلی ممنون که تماس گرفتیم خوشحال شدم من خدا حافظ شما الو؟ الو؟ الو؟ بفهمين؟ الو سلام. سلام. آقاي، صحابتي؟ بفهمين؟ خوبین. خیلی ممنون. شما خوبین. لو من من ربلاستون دنبال میکنم گفته بودیم که زنگ بزنید و اینا ما زنگ زنید. خیلی لطف کردين شما آقاي. من حاج علی خاني، آقا محمد جواد دوستات اسم خداموسا. محمد جواد از کجا زنگ میزنی؟ الان از خب از تهران زنگ میزنم از خوابگاه دانشگاه شریف. خوابگاه دانشگاه شریف. بله. خوابگاه دانشگاه شریف من که هم داره. نه الان با موبایل دارم زنگ میزنم. نداره تلفن؟ تلفن نداره نه. مگه میشه؟ زمان ما داشت. بدی؟ کدوم خوابگاه؟ خوابگاه طرش نه این یکی خوابگاه زنجان. خوابگاه زنجانی؟ بله. ولی تلفون دی... زمانمون تلفن داشت من یه سال خواب باز انجام بودم بعد رفتم ترشت <تصفيق> نه نه دو سال دو, س... دو, س... دو سال نه سه سال من سه سال دو سال زنجام بودم دو سال ترشت داره چی میخونی اونجا؟ من کامپیوتر نمسته اه هم رشته این که بله میخونی بودم چقدر جاله خوب موضوعی داری برای این برنامه؟ برای این برنامه؟ نه، میخواستم ببینم که چی می‌خوایم بگیم چه جوریه قضیه و اینا. قضیه فکر میکنی چه جوریه؟ مطلب جالب جالبه من دوست دارم مثلا موافقم بعد مثلا های خوابگاه میخونیم جویه. با هم بعد... یعنی میخونین؟ نه مثلا من باقی بچه ها به معرفی کردم و اینا اونا هم مثلا. بعد جدیش هم... صحبت میکنیم؟ آره مثلا می‌تونیم در مورد مطالب وبلاگ صحبت کنیم. شاید جوزه ما ما دانشجو بودیم و این کارو نمیکردیم یعنی شما یه کار باحال‌تر و جالبتر نداریم که بکنیم به عنوان یه جوونی که دانشجو و کلی انرژی داره چرا کار باحال‌تر زیاد مثلا میاد تو نمی‌ونه اینا ولی خب انجام نمی‌دیم حالش حالشو ندارین نه حالش هم داریم شاید مثلا که تو که انجام اینجوری مثلا همین پادکست دادن و خیلی اصلا از, از این ایده ولی خب بفرون انجام بدیم چون یک تیم مسخره تشکیل نمیشه به این که شرائط شرایطش نیست محمد جواد نظری روزه پرتغال تامسون چیه؟ پرتقال. پرتقال تامسون هنی پرتغال که خوش کردم فقط آره هم اونا بلن به چیزهایی که فقط خوش کردم و در اونشی می کار بردی رو خیلی بری خب میشه بیشتر توضیح بدی چی بشه من لباس مجلسی نمیدونم یعنی پرتغال مجلسی خیار مجلسی نه ولی آخه پرتغال میدونی دلیل اینکه من میگم تامسون به خود مثلا خیارم میتونستم به عنوان موضوع برنامه انتخاب بکنم فکر میکنین چرا خیار رو انتخاب نکردم پرتغال انتخاب کردم چون هلان داری پرتغال نه دیروز پرتغال خوردم و. دیروز این ایده به ذهنم رسید نزدیکترین میوهی که نصفت الان خورده نه ولی دیروز اگه خیارم میخوردم اینو انتخاب نمیکنم بخواد اینکه پورتغال خیلی فراگیر این پو... تامسون خیلی فراگیر شده یعنی به نوعی ما تامسون آیز شدیم من میگم نیتا سیپ شده یعنی همه جا همیشه توید میخونم هر جا میرید تو رفت میوه اینا هست نه تنها هست بلکه فقط همون شکل خاصش هست یعنی سیبم هم دیگه گونه های رو شما خیلی سخت میبینین خب سیب خیلی گونه های مختلفی داره اکثر میوه ها اینجوری هن. ولی پرتقال و سیب که مثلا من شنیدم پرتغال پنجاه تا گونه داره چل پنجاه تا گونه داره سیبم هم خیلی گونه های مختلفی داره ولی اکثر وقتها همین سیب قرمز که خدا میدونه چند وقت توی سافت نگهداری شده و رو پوستش هم یه چیزای نانو میزنن که میگن دانشجوهای شریف اخترا کردن که این سیب خیلی میمونه و فراتانزوم هست. کلا الان دیگه بازار میگه و صنعت دیگه, دیگه شده. یعنی اینکه خیلی ای با صنعتی کردن میخوان دیوار رو زیاد کنن نوین آباد. به نظرت به نظرت بازار و تقاضای آدمایی رو به وجود آورده یا این داره سلیقه و تیست آدم رو عوض میکنه یعنی توضیح بدم؟ مثلا یه زمانی من بچه بودم خب این پرتغال تامسون تازه اومد بعد مردم خیلی هیجان زده شدن از دیدنش و شروع کردن به خریدنش خب اونایی هم که به حال باغ دار بودن یا تو بیزنس میده بودن دیدن بازار کشش داره این تامسون رو بیشتر کاشتن و رواج دادن و از یه جایی به بعد دیگه شما نمیدونی که تقاضای مردم بوده که اینقدر ما تامسونایز شدیم یا تامسونایزیشن از یه جای دیگه اومده هر دو دیگه یعنی وقتی یه چیزی فراگیر میشه مثلا ده درصد جامعه که میخرن خب ولی خب همین 9 درصد تقاضا هستا کم بیشتر ولی خب درصد آروم آروم بقیه این 9 درصد می‌مونن میشه 12 درصد میشه 20 می میشه دیگه خلاصه همینجوری آروم آروم از هر دو طرف این قضیه زیاد میشه ولی خب اصلش همینه که ملت یعنی این کپی کردنه خیلی زیاد دیده میشه مثلا تو همه چی قضیه مود و اینا کلا همینه که ملت کاراشون خیلی شبیه هم میشه آدمام یعنی مثل هم میشن آره یعنی آدم‌ها از اون رو میانگینه، نه؟ مثلا از رو اطرافیانشون شون خیلی تصمیمگیریاشون بر اساس تصمیمگیری های شون میشه همه چی تومسون میشه. آره، کایگان. حالا چیکار چی باید کرد؟ چی؟ چیکار چی بل... باید کرد؟ اه... تو هم خود خودم خیلی روی فکر میکنم و چیزی که بیشتر از همه، تو همین جو دانشگاه منو آزار میده همینه تو دانشگاه هم مثل همن؟ همه فهمان؟ همه فهم نیستن ولی خوب خیلی همه فهمان با. و... نه مثلا تو تو, یعنی تو همه معلصه ها نه ولی اگه تو یه معلصه نگاه کنی یعنی مثلا تو فلان چیز نه میبینی که 90% افراد شبیه همه اون, فلان... اون فلان چیز که تو رو اذیت میکنه چیه اونجا تو اون دانشگاه تو ام... او ف... توی خیلی مختلفی باشه دیگه حالا مثلا یکی دوتا که خیلی عزیتت میکنه از برگیه بیشتر چیه که میره تو اصابه یکیش همین نداشتنه مثلا فکر و ان اهم. آه، یکیش آه، اهمیت ندادن به چیزهای متفرقه یا یا اینکه جرأت نداشتن جرت نداشتن برای امتحان کردن چیزهای جدید این خیلی مهمه یعنی همه داخل یه قالبیان و دوست ندارن که از اون قالب بیان بیرون تو خودت ندارن. از این قالب رو فکر می‌کنی اومدی بیرون من سعی دارم اه. که حداقل از این قاله بیام بیان خب جوری این کار رو داری میکنی؟ شاید هم نباشم تو این قاله باره نمیده. خب این سعی و مظاهر این سعی در چی هست؟ آه مظاهر این سعی به نظر اینه که آدم راههای مختلف و چیزهای مختلف به اینکه این که ویبلاگ من رو میخونی این سعی تو در کجاها خودشونشون میده؟ خب چه میدونم مثلا چیز... چیزهای کتاب های مختلف مثلا زیاد میخونم میکنم یعنی که مثلا دوست دارم دایره دوستام علاوه بر محیط دانشگاه خیلی گسترده باشه. آن دوست خارج از دایره دانشگاه؟ آره زیاد زیاد نه ولی خب دوستای خیلی خوبی از بیرون دارم بزردتر. این خیلی خوبه. این چه جوری پیدا می‌کنینشون؟ ا اینا یه سری، یه مثلا فارغ و همون یه مثلاً فارغ‌التحصیل قدیم مدرسهمون بودن. یه یه سری‌هاشون مثلاً بچه های مدرسه بودن، یه سری‌هاشون مثلاً از بچه‌های مثلاً المپیاد بودن که حالا سال می دوست حالا از اون سابقه قدیمی الان که دانشجوی شریف فرسی تو این زمان شده مثلا بری از یه جای دیگه ای دوست پیدا بکنی دوست جدید مثلا چه میدونم یه تاعتری بری یه کلاسی بری یه کلاس هنری بری چه میدونم یه پارکی بری یه دوست پیدا کنی اینجوری نشده ولی خب مثلا شده که با دقیه دوست بریم بیرون و مثلا ها هم یعنی موریتیت چهار پنج نفر باشیم و اون مثلا با هم دیگه این چهار پنج نفر نیستش متوجه نشودم یه بار بگو. به این مثلا من یه دونه دوست دارم اون خودش رفته دوست دیگه داره ما هم رفتون دیگه نه مثلا کلی بعد این دوستی ادم پیدا کرده مثلا آره یه مقدار مثلا اینا پیدا کرده ما دقیقاً اینکه ببینیم و اینا مثلا چامبوق میایم حامم زیاد ببینم مثلا صحبت کردیم و اینا ای خب اه. از اینکه آدم های متفاوتی بودن و اینها خیلی خوشاوند دیگه یعنی دیدم که چقدر مثلا اینا اینا این این آدما با اطرافیان من فرق دارن چقدر من چه مثلا چه فرقایی بوده که تو رو جذب کرده اه... خی... خیلی فرقا بوده دیگه مثلا معیارها ارزش‌ها اینا خیلی فرق میکنه خیلی حالا <تصفح> میشه یه تعریف در یکی دو شو بگی مثلا چه میدونم؟ یادمان مثلا یه باز رفتیم با یک از از شاهاش را شدیم و ایننا که حالا خیلی بزرگتر بود ولی خب مثلا یه آدم هنری بود و حالا دخش را از ما بود ولی اصلا یه آدم هنری بود، تیارش خیلی دوست داشت، یعنی فیلم کوتاه میساخت، مستند میساخت، بعد مثلا خیلی این باز جالبی داشت، آره مثلا فردا بریم، فلانجا از فلان، مثلا آدم مستند تهیه کنیم و نمیونم، تو این تو ما بودم تو این سن مثلا همه مثلا کار پیدا کنیم و زم میدیم این اصلا تو این بیزا الان این بچه های شریف حالا هواشون چیه آرزوهاشون چیه به آی تی و هاروارد رفتن اون که هست ولی الان مثلا توی چیز ما توی مثلا رودی ما حالا مثلا چه هستم از بچه های دیگه هم داریم اینجا میتونیم صحبت کنم ولی مثلا توی کام خیلیشون که رو چون از قدیمم میشناختم چه اینا اه. مثلا الان هست که یه کاری انجام بدیم اه مثلا بیزنس و استارتاپ و اینا خب اکثرش اکسر اره همین بیزنس و استارتاپ و ایناست یعنی اینکه مثلا بچه‌ها دور هم جمع میشیم حالا من خودم هم مثلا میرم تو همشون و اینا یه استارتاپ کوچیکی را بندازیم یه بیزینسی را بندازیم یه زپ بکنیم یه, یه کاری را بندزیم حالا عمومنم ایده های مثلا مختلفی و, و اینا دیگه اکثرا یک چنین چیزی تو فکر مثلا حالا شاید 170 درصد بچا باشه. ولی خب حالا اینکه به نتیجه نمیرسه میرسه یا اینکه حالا چقدر درست هست نتیجهش نتیجهشو پیشکش به عمل میرسه یا نه همین در حد حرف فقط دوره هم جمع میشین و ایده پردازی میکنین. ك... حالا در حد حرف و ایناست. چرا یه کاری کردیم مثلا یه دونه سایت بود که الان زدمش یعنی اینکه البته خب من توش نبودم خب سه چهار تا از بچه‌ها چهار پنج از از بچه‌ها بود که مثلا البته خب خیلی ساده بود خیلی سخت نبودم خب یه مثلا یه درسی داشتیم یه سری توش مطرح شد برای که هر کسی حالا هر تیمی تیم بندی بشه مثلا هر تیمی بره دوباره یه کاری یه سری کار انجام بده خب از مجموعه اون حالا تیم هایی که مشخص شد یک کار انجام شد این بود که های کتاب زبان رو که بچه هایی داشتن و تو توی سایت و چیز شبیه جبه درست کردن که بچه ها موضوی لغت داشت لغتهای اینه بدی نبوده همین که انجام شد مثلا نشون دسته از توانایی دارن حتما دارن حتما کسی توانایی مگه میشه نشته باشه تو فکر می کنی من برات چه کار میتونم بکنم؟ تو برا... شما برای من چه کار کنم؟ ب... آره یه خواسته از من داری که من بتونم برات انجام بدم؟ چه حدیه ای م... می تونم بدم؟ نم... نمی چیزی بزنه دمیاد؟ آها میتونی مثلاً مثلا یه کتاب خوب بگیم یه کتاب خوب بدم؟ باشه برام یه ایمیل بفرست و توش بنویس که به چه موضوعاتی علاقه داری ام. من در جواب اون ایمیل یه کتاب خیلی خوب که به فکر کنم خیلی خوبه و خون خودم خوندم و اتش میکنم و بعد میفرستم ایمیل همو هم داری؟ ایمیل نه ندارم. دارم ایم. ali dot com تو کانتکت دو... وبلاگم هم, هم هست دیگه آه آکه سوالی داری ای... من؟ آره این تست سختی اتناسی رو دیدیم شما کدومشو؟ MBTI بله این تست این چندوقت خیلی توی این همین بودی های مثلا کامپل شریف و این خیلی مورده بحث شده این نظرتون در برشتی ببینید این تست مثل هر ابزار ای میتونه خیلی کاربرد داشته باشه به خود من خیلی کمک کرده که اه، اه حالا خودمو بهتر بشناسم شاید عبارت دقیقی نباشه ببینید یه دستبندی انجام میده و شما وقتی میفهمی که مثلا من اگه اشتباه نکنم آره، آی انتی پی هستم جان جدی منم آی انتی پی هستی خب <تصفيق> <تصفيق> خوش رفت. وقتی که میفهمی آی انتی پی هستی و اینکه به شکل تیپیکال یه آی انتی پی چجوریه و کمکی که به خود من کردیم بودش که فهمیدم که اون چیزایی که مثلا قبل از اینکه با این تست و اصولا ژنتیک بودن یه سری فاکتورهای شخصیتی آشنا بشم به شکل نقطه نقط زهست میدیدمشون و خیلی تلاش میکردم اینو عوضش بکنم خیلی وقتا خودم هم نمیدونستم که دارم تلاش میکنم یه چیز ژنتیک و عوض بکنم فکر میکردم دارم این چیز یاد میگیرم و این خیلی انرژی می برد خیلی زور می زدم خیلی تجربه خوشایندی نبود ولی از وقتی فهمیدم که مثلا من تو این اندازه به فرض مثلا درونگرام و اینجوری هستم این تیپ با این تیپ کارا و با این تیپ رفتارا بیشتر حال می‌کنم، و یه همچین خط و خطوتی در زندگی من جریان بهتری داره این به من کمک کرد که تصمیم بگیرم کجاها بیشتر برم، بیشتر سرمه کنم، بیشتر تلاش کنم، کجاها رو دیگه خیلی زور نزنم. این به این معنی نیستش که مثلا شما وقتی میفهمید تا حدود زیادی اینتروورتی کلن ارتباط برقرار کردن و کلا یادگیری و به به صلاح روابط اجتماعی و سوشالیزیشن رو بذاری کنار نه. این به این معنیه که شما بدونی نقاط قوتت کجاست، چه گیفتی طبیعت و خلقت به شما داده و اگر چیزی میخوایی بسازی بیشتر بر اساس اون گیفت بسازی تا بر اساس نقط زحفا و اونایی که نداری من کنم هر کس دیگه میتونه از این تست ام بیتوی خیلی خوبه یعنی خیلی به صلاح انواع اقسام رفرنس داره تست، یعنی تست شده آزمایی شده و ازش استفاده شده در زمان خیلی زیادی در به اصطلاح مکان‌های زیادی در یعنی فرهنگ‌های زیادی توسط آدمهای خیلی زیادی اینی که خیلی قابل تکیه کردنه ولی خب تستایی دیگه هم هست اصولا هر هر تستی یا هر ابزاری که کمک بکنه شما یه چیزی رو در مورد خودت بهتر به بفهمی به نظر من خوب ولی خب به نظر من این تست یکم آدمها رو طالببندی یعنی اذا من توی قالبه خاص میفتی و اگه تو خیلی بخوای این تکیه بکنی باعث میشه که ندونی کامل اون خودت هستی بله این اینکه من از کلمه ابزار استفاده میکنم به خاطر اینکه شما به قول ابراهام مازلو وقتی که تنها ابزاری که دارید چکوشه همه چی و همه مسئولی به شکل میخ میبینی اگر شما فقط و فقط بخوای از سست ام بی تی آی برای شناختن خودت استفاده بکنی قاعدتا محدود میشی بندی میکنه و همه آدم ها رو میخوای در یه دسته ای تعریف بکنی ولی اگر تست MBTI یکی از صد ابزاری باشه که شما در زندگی به کار میگیری و در شناخت خودت و یادگیرید به کار میگیری به عنوان یکی از صد یا هزار ابزار میتونه چیز خوبی باشه بعد اونوقت بقیه این ابزار چی میتونم باشم هر چیزی هر چیزی که فکرشو رو هر چیزی که در زندگی میتونی تجربه کنی از غذا خوردن و سفر کردن گرفته تا کتاب رو نمیدونم حرف زدن با آدما و هر چیزی که به شما در حقیقت شما رو در مقام مشاهده و تعامل در مقام ابزرویشن و اینتراکشن با محیط اطراف خودت قرار میده میتونه یه ابزار خیلی خوبی باشه برای شناختن خودت <تص> خیلی ممنون که تماس گرسیم دانشجوی کامپیوتر از صنعتی شریف <تصفيق> آره به دوستاتم سلام برسون بگو و بعد زنگ بزن اطمان آره قربان <تصفيق> تو خیلی ممنون خایش میکنم خدا خدا